به مناسبت پرسه یک خانم زردشتی لازم است شمعی راجب مقام زن در ایران باستان صحبت بشه البته میدانید کلمه زن در فارسی یعنی زاینده یعنی ایجاد کننده و این کلمه کلمه آریایی قدیمه که زبان هندو اروپایی و هندو ایرانی هر دو کلمه شبیه به این دارند. و نظیر زن در زبان لاتین میشه جن جن یعنی ایجاد کننده به وجود آورنده و باز دختران در زبان عرستا دوشیزه خانده میشه برای که در ایران باستان که شغل عمده ایرانیان دامپروری و گوسمنداری بوده شغل دختران دوشیدن شیر گاو و گوسمند بوده و تا زمانی که شوهر نمیکرده شغل عمدهش در خونه دوشیدن شیر گاو و گوسمند و گله و اینا بوده و دوشیده یعنی دوشنده و کلمه دختر هم همین معنی داره کلمه دوغ در زبان فارسی یعنی شیر و دختر یعنی شیردوش و کلمه داتر انگلیسی هم ببینید وقتی منویسیم دی ایو جی ایچ میشه دو. دختر یعنی شیردوش پس ایرانی ها همون ای که در شغل دامپروری و کشاورزی و دیگر شغل ها مرد کار میکرده زن هم دوش مرد به شغل شوهری میپرداخته، زن کشاورز به شوهرش کمک میکرده زن دامپرور به شوهرش کمک میکرده و کم کم میدونید دونید از اونجایی که ایران سرزمینی است که مثل پلیه بین جهانگیران غرب به شرق شرق به غرب شمال به جنوب و جنوب به شمال و همیشه ایران مورد حمله و حجوم ملل بیگانه قرار می گرفته اسکندر می بره به هندوستان مجبور بود با سربازانش از ایران رد بشه تعداد زیادی، سربازش کشته بشه، ایرانیان را بکشه تا براسه بهند و اونجا میخواست اون دفینه و زخیره بطکده هندی را کشنیده بود چقدر زر و سیم و اینا هست برو باید. مجبور بود از ایران رد بشه باز عرب ها میبینیم باز همی کار کردن ترک و مغل و چنگیز و هر که میخواستن از شرق برند، از غرب آن شرق باز میبینیم که مورد حمله به حجوم مردمان ایران قرار بعدش هم روس و انگلیس حالا هم، امریکا و انگلیس و فرانسه و روس همه نظر داره. و خوشبختانه این راه آهنی که از شمال به جنوب و از شرق به غرب کشیده شده امیدواریم به جای اینکه به ضرر ما تمام بشه از این به بعد به نفع کشور ما تمام بشه ولی زمانی که مورد حمله و حجوم ملل بیگانگان قرار گرفتیم زن هم دوشا دوش مرگ میبایستی بره به دفع دشمن تیر و کمان یا بعدا توفنگ در دست بگیره کمانی که ایلات و اشاهر ما مسل لور کرد بلوچ بیراحمدی ممسنی اینا همه زمانی بوده که زنها تفنگ در دست میگرفتند و ما مردانشون بر علیه دشمن میجنگیدند از زنان در ایران باستان از جنبه معنوی هیچ فرقی با مرد نداشتند فقط از جنبه مادی البته زن و مرد با هم فرق داریم وظیفه جسمانی زن با وظیفه جسمانی مرد فرق داره ولی وظیفه معنوی یعنی وقتی زن به یک مقامی رسید که مرد هم اون مقام دارا بوده همون اندازه اهمیت پیدا میکرد که زن هم همین اهمیت داشت و ما اشمای زیادی از بانوان ایران باستان داریم که اغلبشون جز به پهلوان‌ها ها می معروف بودند و گاهی هم با اون جنگ تن به تن با مردها ها حالا این نام‌های زنان معروف ایران باستان به طوری که همه می عبارتند از رودابه، تحمینه، منیژه گردآفرید، بانو گوشست گردیه هما دخت بهمن پوراندخت آذر می دخت که با همای به درجه پادشاهی رسیده بودن و مانند اینها و همیشه ایرانی تعلیم و تربیت را برای دختران بیش از پسران اهمیت میداد. می گفتن پسرا که شغل پدری پرا می گیرن و علمی لازم ندارند. فقط حسابی لازم دارند جمع و منها و حالا خیلی هم باشه زرد اونم با چکه انجام میدادند. ولی پسر دختران می باستی به طوری که در کتاب پهلوی و تعلیمات دینی نوشته شه بیش از پسران می باستی تعلیم و تربیت پیدا کنند. برای که دختر تا در خونه شوهر هست کمک بکنه به مادر در تربیت برادران و خواهران خودش و موقعی که شوهر میکرد بتونه فرزندان خوب بار بیاره در فارسی شعر داریم میگه دامن مادر نخست آموزگار کودک است تفل دانشور کجا پرورد نادان مادری پس این اشخاص طوری بوده که مثلا در اواخر ساسانی زمانی که در عربستان دخترها را زنده به گور می در ایران دو زن که دختران خسروپروید بودند به نوبت به پادشاهی رسیدند. برای که ایران فرق نمی وقتی یک دختری همون مقام شامخه که پسر میتونست به دست بیاره دخترم که به دست می حتی پادشاهان که میشد حکومتش را قبول داشتن در عوستا چندین بار اشو توشت نام زن و مرد را همراه می بره. مثلا در عوستا ینگی هاتام که آید یسن پیتا ونگو مزده و رو اشاد چا یا انکام چا تانس چا تاس چا یه زنه ایجه معنیش پارسی بین زنان و مردان آن کسی که با سمیم قلب، با ته دل بدون زهد و ریا خداوند را ستایش کنه اهورا مزدا به خوبی آگاه میشه بر چنین زنان و بر چنین مردانی ما دروی می فلسطین تانس شا تاوس شا یزمیده تانس شا یعنی مردان و تاوس شا زنان حالا در اوستا ما جاهای زیادی داریم که خطاب میکنه موقعی که در توش صحبت کنه در حضورش که جمع میشدند و گوش به سخنانش بدارند هم مردان حاضر میشدند و هم زنان از جمله در یسنای سی بند دو اشودرتوش خطاب به مردان و زنان میکنه میگه ای مردم گفتار نیک دیگران را بشنوید و با اندیشه روشن در آن بنگرید و میان نیک و بد را خود داوری کنید زیرا پیش از این که فرصت از دست برود هر مرد و زن باید به شخص راه خود را برگزیند بشود که به یاری خرد اهورایی در گزینش راه نیک کامروا گردید باز در یسنای پنجاو دو زمانی که عشوزرتوشت جاماست که بعدا داماد پیغمبر بود، جاماست را انتخاب کرد برای همسری دخترش چیست. عشوزرتوشت در قدیم مجبور نمی که هرشی که پدر و مادر بگه دختر قبول کنه مخصوصا در مورد قبول شوهر اشو توش کتاب میکنه به دخترش و میگه ای فروچست ای جوان ترین دخترم من که پدر تو هستم جاماس فرا که یاور دین مزداست از روی راستی و منش پاک به همسری تو برگذیدم اینک برو با خردت مشورت کن و در صورت پسندیدن با عشق پاک در انجام وظیفه مقدس زناشویی رفتار نما یعنی پدر میگه ای دختر من فلان کس را به همسری تو پذیرفتم قبول کردم خوبه خودت باید تصمیم بگیری بعد پاسخ پروچز بعد از دو میگه ای پدر من جاماسپ را میشناسم و با ته دل به او مهر میورزم میدونید جاماز یک کسی بود که در دربار شاگشداس با جاماز و اسپندیار اینا دین زرتشتی را پذیرفتند و در نتیجه پوروچستم میدانست که یکی این جاماس یکی از کسانی است که به دین در آمده از این جهت میگه من او را میشناسم و با دل به او مر میورزم و نسبت به شوهر آینده خود مانند پدر و بزرگتر رسم وفاداری به جا خواهم آورد بشود که مزدعه را بخشش میکندیشی را همیشه بهره من گردانی پس دختر میگه بله، ای پدر همونطوری که پیشنهاد کردی که او را به همسری برگزینم من هم رفتم با خردم مشورت کردم و به ای که از او راجب او شنیدم حاضرم با او ازدواج کنم حالا توش یک مجلس عروسی برپا میکنه موقعی که دخترش عروس میشه خطاب میکنه به نوجوانان، نو جوانان، خصوص نو عروسان و نو دامادان این اندرز بسیار عالی که باید همیشه سرمخش دختران و پسران جوان ما باشه میگه ای اشودرتوش میگه ای نو عروسان و دامادان روی سخنم با شماست به اندرزم گوش و گفتارم را به خاطر بسپارید و با غیرت در پی زندگانی پاکمنشی برای هر یک از شما باید در کردار نیک و مهرورزی بر دیگری پیش دستی زوید تا این زندگی مقدس زناشویی را با خوشی و خرمی همراه سازد. ای مردان و زنان راه راست را در یابی و پیروی کنید هیچگاه گرد دروغ و خوشیهای زود گذری که تباکننده زندگیست نگردی زیرا لذتی که با بدنامی و گناه همراه باشد چون زهر است که به شیرینی درامیخته و همانند خودش دودخیز با این اینجور کارها زندگانی گیتی و مینوی خود را تباه مسادی پاداش رهروان نیکی به کسی رسد که هوا و هوس و خودخواهی و آرزوهای باطل را از خود دور ساخته بر نفس خیش چیه گردد و کوتاهی و غفلت در این را پایانش جز ناله و افسوس چیز دیگری نخواهد بود فریب خوردگانی که دست بکردار کردار زنن یه گرفتار بدبختی و نیستی خواهند شد و سرانجامشان خروش و فریاد و ناله است ولی زنان و مردانی که مردانی که به اندرز و من گوش منگوش دهند آرامش و خوشی زندگی بهرشان خواهد بود و سختی و رنج از آنان دور خواهد گشت و به نیکنامی و جاودانی خواهند پیوست باز در اوستا ما یک یشت داریم به نام فروردین یشت که در زمان خیلی قدیم حتی پیش از اشدرتوشت این به شعر درآورده شده تعداد زیادی از مردان نامور ذکر میکنه و از جمله تعدادی 25 از زنان معروف و نامی اون زمان ذکر میکنه که در موبد وقتی میخونه یکی یکی اسمشون رو ذکر میکنه و درود میفرسته. پس در ایران، زن و مرد هم پایه و مقامند ولی بدبختانه بعد در اثر حمله بیگانگان زنان از تعلیم و تربیت باز داشته شده بودند حتی بین خودشون هم نمی داشتن زنان و دختران درس بخونند. و در نتیجه سطح معلومات زن خیلی پایین آمد و بعد میبینیم با وجودی که یک زن زردشتی خودشو زرتشتی میخونه دینش با مرد زرتشتی فرق داره سفره بیبی شنبه پام میکنه سفره دختری شاهی پری پاهم میکنه سفره نمیدونم حالا چرا بیبی سه‌شنبه اولا یکشنبه و دوشنبه مال ما ایرانیان نیست مال بابلی هاست که هفت تا ستاره اولیه که پیدا کردن اسم این هفت ستاره را خدا میدونستند و هر روزی برای پرستش یکی از این خدایان بود. مثلا روز یک شنبه روز پرستش خورشید بود که هنوز انگلیسی هم میگییم روز دوشنبه روز پرستش ماه بود. روز سهشنبه مریخ بود. پس شنبه و یک شنبه و دو شنبه و سه نه مرد نه نزن. ولی می بینیم که همیهنان ما، مسلمان ها زنانشون نمیذاشتن برنجایی. اگر میگفتن میرییم با یک زنی صحبت می کنیم حرفی نداشتن. این بود که این سفره بیبی سه شنبه رو اسم زن روش داشتن که وقتی شوهرشون میگه کجا میرید بگیم خونه فلان، کس میریم. سفره بیبی سه شنبه نمی گفتفتن آغاست شنبه. یا مثلا نخود مشکل گشا میگن. واج حج کعبه شد حج کعبه مال کیه؟ آیا مال ما زردشتیز؟ این نشون میده از دیگران یاد گرفتن یا نخود گشا، اون نخودی که زیر دندان ما نرم میشه نمیتونه مقاومت کنه چطور میتونه شوهر و بچه ها اینها رو نگه اینها اثر نفوذ دیگرانه اینها از مذهب دیگری گرفته شده و به خصوص جادو و پری در مذهب زرتشتی از موجودات نفرین شده و لعن شده است در اوستا میگه یاتو نام پایر نام چه ساترام کویام کرافنان چه یا یعنی جادو پیریکا یعنی پری میگه بر جادو و پری و عقیدمندان به جادو و پری نفرین بود. پس عوض این که خیال کنید فایده برای شما داره برعکس روز به روز زندگیتون بدتر میکنه برای که چیزی دارید میپرستید که عشوذر توش قدغن کرده موهومات و خرافات روز بود امیدواریم سطح فکر بانوان به خصوص که یک دوره بیعلمی را طی کردن یعنی تقریبا از 50 سال به بالا ولی خوشبختانه دخترای ما امروز مدرسه میرن علم و دانش یاد میگیرن و شما را به خدا یاد دختراتون ندید این کارا رو و بدانید راه غلط دارید میرید امیدواریم این اندرز ما که یک عمر در راه دین تحصیل کردم قبول کنید و راهی برید که باعث خوشبختی خودتان و شوهر و بچه و خانواده خودتان باشد به نام احور خداوند جان و خرد همکشان محترم اطلاع دارند که ما چار کتاب اوشتا از زمان بسیار قدیم یعنی از زمان حتی پیش از زرتوشت به دست ما رسیده و داریم قدیم تر از همه اون چی که اشوزرتوش را ورده گاتاست بدبختان گاتا کمتر مورد توجه همکیشانه اصول دین ما در گاتا هست زرتشت این گات ها را سروده و به شعر درآورده. از این جهت گات ها به شعره برای که زمانی که اش و به پیامبری برگزیده شد کتاب نبود کاغذ نبود چاپخانه نبود هیچ وقت نوشته ها را کتبا نمی نوشتن بلکه به اهنگ و سرود و شعر می شرودان و اون زمان مردم به قدری باهوشان بودند که وقتی یکی 20 ساعت شعر مثلا 20 ساعت خوانومه رو می دوباره یکی دیگه خاموشه دور عینن همان 20 ساعت شعر رو بدون کم و تکرار میکرد و شعر یکی حس نشینه که هم در ذهن آدم میمونه و همم هم به عنوان اصول دین مردم با ایمان و اعتقاد به آن پیروی می مثلا ما الان یک سروید داریم که از شادروان بهرام راوری هست سرور امشاسبندان می بینیم هر مرد پیر یا زن پیری این سرور امشاسبندان را میدونه در صورتی که عوسته های دیگه شاید کمتر بدونه یا این منازات های بهرام راوری را می‌دونه، پس گاتا از گفته های خود اشو درتشته و ما هر زردشتی مبذفه که اگرلن یک ترجمه ای از گاتا در منزلش داشته باشه و ببینه گفته زردشت چیه آیا حقایق دین زرتشتی چیه؟ ما وقتی می خواهیم واقعیات و اون که واقع نبوده بدانیم باید رجوع کنیم به گاتا بعدا موقعی که مدتی طول کشید پیشوایان دین زرتشتی آمدند یک کتاب دیگری نوشتن به نام یسنا یسنا یعنی ستایش و این یسنا گاتا را گذاشتن وسط این یسنا تقریبا مثل نگینی که وسط انگشتر بگذارن پس یسنا عبارت است از نیایش ها و عباداتی که در مورد امشاسبندان و ایزدان و فرواهران و اینها بود با خود یاشتای یگاتای یا اشوداکتوشت کتاب دیگر اوستا بهش میگیم رد یعنی بزرگان ملت و بهترین نمونه هر چیزی و این یک دستوری بود برای پیشوایان دینی برای ردان، بزرگان دین که بدونند وظیفهشون چه کارهایی باید بکنن و چه کارهایی نباید بکنن و این کارهای بایست و نبایست و شایست و ناشایست را به چار گروه تقسیم کردن بایستنی‌های دین یعنی واجبات دین نابایستنی ها یعنی حرام یعنی اون که نباید بکنن شایسته دین یعنی اون که به قول اسلام مستحبه یعنی اگر بکنید خوبه اگر نکنید مانه نداره و ناشایست یعنی مکروه و عینا همین چهار گروه که از کارهای واجب و ناواجب و اینا بود بعدا ایرانیان وقتی اسلام را پذیرفتند این بایست و نابایست و شایست و ناشایست را کردند واجبات و حرام و آنچه که لازم شایسته است مستحبه و مکروه. پس این چار گروه از همون کتاب های ما برداشته بعد از ویس پرد می رسیم به یه اشتا در واقع این سرودهای دینی بود که مربوط به دین و، آین و تاریخ و فرهنگ و جغرافی و علوم ایرانیان پیش از در شما اگر به یشتا نگاه کنید می یک مقداری از پادشاهان پیشدادیان و کیانیان صحبت میکنه. عقیده که مردمان اون زمان نسبت به خدایان خودشون داشتن میدونید پیش از در مردمان، ادهی طبیعت پرست بودن ادهی میر پرست بودن ادهی ناهید پرست بودن ادهی زربانی یا دهریون و جبریون بودن و این اوشه هند یعنی نور هم یعنی سرزدن پس اوشه اولین گاه روزه یعنی چون ما روز ما روز ما خرشیدیه و اولین نور خورشید که میبینیم این روز ما شروع میشه پس گاه اوشهن اولین گاهه یعنی اگر کسی گاه اوشهن خدا بیاموزی بشه مربوط میشه به روز بعد حالا این گاه اوشهن ایرانی همیشه سهر پا میشدن و مردها این نماز اوشهان میخوندن زنها خونه جارو میکردن آب میپاشیدن و تا اونجایی که دیوار خونه بود جارو میکردن و محیط خونه را پاک و تمیز میکردن بعد از اسلام هم میبینیم همون گاه اوشهان اولین نماز صبح مسلمانان شد در صورتی که سال شماری عرب سال غمری بود یعنی با دیدن ماه در شب روز شروع میشه 24 ساعت شروع میشه ما قدیم مینوشتیم مثلا اجاره نومه مینوشتیم این اجاره داده شد به 15 روز شبان قدیم اولی که بگیم شبان روز میگفتیم روز شبان برای که روز شروع میشه بعد شب ولی بعد از اسلام که سال مای غنبری در ایران رواز پیدا کرد شبانه روز شد یعنی اول شب بعد روز ولی می بینیم بر عکس این سال شماری عرب نماز مسلمین از سحر همون روز مثلا میگن گن صبح شما اگر ازان شب ببینید میبینید تقریبا یک ساعت یا یک ساعت و نیم پیش از برآمدن خورشیده و اونها به نام فجر نور میگن مثل اوشه هن اوشه یعنی نور هن یعنی سرزدن سرزدن نور که اونها میگن فجر نور یعنی انفجار نور و اونها همون نماز سحر را اولین نماز خودشون میخونن ولی بدبختانه ما بعدا دیگه فراموش کردیم و او گاه اوشهان را آخرین گاه می‌خونیم. و اول می‌گیم هاون رپادمن و زیرن ای بسال اترم اوشهان در صورت اوشهان آغاز گاهان است و در آینه آینه مازیستی که باب که خسرو نوشته اون زمان به کمک پارسیان هند و اطلاعاتی که داشتیم گاه اوشهان را آغاز گاهان میخوندن پس در زمان فریدون مهرپرستی شروع شد. و بعدا این مرپرستی به قدری شایع شد در تمام کشورهایی که خورشید را میدیدند و نور و پروغ خورشید را امیت براش شاهر بودند و بعدا می در زمان حامنشیان این آین مهرپرستی نه فقط در تمام مستملکات ایران، گسترش پیدا کرد بعد که به یونان و روم هم رسید و این اول دیما میدونید شب قبل از اول دی طولانی ترین شبه ولی اول روز دی میگند تولد مهر بوده در قدیم برای برای روز از همه کوچکتر بود و روز به روز نور و فروغ خورشید مثل بچه که تازه متولد شده روز روز به روز بزرگتر و بزرگتر می شد و این اول دی مطابق می شد با 25 دسامبر و در یونان و روم هم 25 دسامبر رو روز تولد میر می که بعداً وقتی کنستانتین امپراتور روم مسیحی شد میخواست ببینه که مسیح کدوم روز متولد شده و هرچی گشتن نتونستن پیدا کنند. ولی تولد مهر را 25ام دسام جاش می‌گرفتن پس کنستانتین گفت حالا پس به عوض تولد مهر تولد عیسی جشن بگیرید ما می‌بینیم باز این عقیده آریایی به یونان و بعدش به روم و اینها گسترش یافت. پس در زمان فریدون یشت مهریاش یا مینیایش مهر که بعدا کوتاهتر شد مال اون زمانه. حالا اگر فکر کنیم چطور شد که ایرانیان این یشها را، دوباره باره دین کردن علتش اینه که یشت هم تاریخ ایران توش بود هم اسم پادشاهان ایران توش بود هم علوم و دانش و فرهنگ ایران قبل از در توش بود و هم نوع دینشون مثلا میگه فلون پادشاهی آمد و هزار گوستپند و گاو و اسب و اینا را قربانیه و طرقنه یا وره حرام کرد که او را فیروزمند کنه و فیروز شد ولی مثلا میگه افراسیاب آمد و او هم مقدار زیادی قربانی کرد برای ایزد ناهید ولی موفق نشد حالا این داستان هم توشه که این قربانی های قدیم می که برای خدایانشون چقدر قربانی میکنند که وقتی عشوذر توش به پیامبری برگذیده شد این قربانی ها را حرام کرد یکی دیگر از چیزهایی که حرام کرد نوشیدن اون شیره هوم بود که یک گیاه هوم را میکوبیدند که اون زمان بین هندو اروپایی و هندو ایرانی هم معروب بود که اسم اون هم در زبان هندی سوم سوم و اونها را میکوبیدن و مخدر بود وقتی میخوردن کیف میشدند و خیال میکردن این که میخورن روحشون میره عالم بالا و سبک میشن و ما در یادشون میده و این یکی از خواص مشروبات ولی اینا خیال میکردن وقتی این میخورن و سبک میشن و شاد میشن این یه چیزی که این مشروع اینها رو میبره به آسمان ها و میبینیم این عقیده بعدا هم بین این دراغیش و اینها هنوز هم متداوله که اینا میان و دوغ درست میکنن و این ماله تقریبا این گیاه که ازش تریاک میگیرن اینا هم باش خاتی میکنن و میگن دوغ وحدت و وقتی این میخورن میتونن شب تا صبح علیگویان برخصن و برخصن و خسته نشد و میگن این خواس این علف و این گیاه که باعث میشه که اینها شاد و خورم بشن ولی در توش رو میدونست و فرمود که این من بشه ولی بدبختانه بعدا میبینیم دوباره این خورشیدپرستی پرستی و میر پرستی و ما پرستی و آب و ما نمیدونم زمین پرستی و اینها به که زمانی به شکل خدایان بودند دوباره بین ایرانیان جلوه کرد برای که همیشه یک قومی که یک دین تازه میپذیرند اون چه که در مغز و جا گرفته این رو نمیتونن فراموش کنن و این رو میارن در دین جدید همون طوری که وقتی ایرانیان مسلمان شدن بسیاری از آداب و رسوم نیاکانشون بردن تو دین اسلام مثلا وقتی ایرانی مسلمان شد در اسلام میگه قبل مورد نباید سایه انداز یعنی نباید این را بزرگ باشه بلند باشه که سایه داشته باشه ولی ایرانی بنا به سنت خودشون سر قبل مرده و شم و چراغ و چقدر چیزها روشن بیکنند ایرانی مسلمان شد ولی وقتی نوروز پیش آمد دید که ای مشل سابق هوا ملایم شد زمین شروع کرد به زایمان درخت شروع کردن به شکوفه کردن با خودشون فکر کردن که ما دینمون عوض کردیم ولی خدا که عوض نشده طبیعت عوض نشده دوباره نوروز اوبردن در اسلام نوروز جشن آغاز سال، مرگان جشن نیمه سار صده جشن پایان سال که بعدا این صده تبدیل شد به چهارشنبه سوری که هنوزم در بین مسلمین رواج داره و بسیاری از این چیزها مثلا ما قبلمون نوره وقتی چراغ روشن میکنیم میگفتیم مصابه با دین پاک دادار رو رومز این صلوات ما زردوشتی بود حالا که مسلمان شده میدونید صلوات را شیعها مد کردن سنی ها ندارن هروز هم اونا هر وقتی میخوان چی کنن الله و اکبر میگن ولی این اومدن آمدن الله و الله محمد و محمد, به آل محمد. این بروز اوند. مسابه با دین پاک دادر ما را به عربی تحضیم کردند و اینا گفتند پس همیشه یک قومی که دین دیگری را میپذیره بسیاری از آداب و رسوم و دین خودش را میاره تو این دین و اینه که در قدیم میگفتند هر هزار سال یک دفعه یک نفر به نام فرشوکرد باید بین ما پیدا بشه و این دین را از آلودگی هایی که در طی هزار سال گرفته پاک کنه حالا فرش و فرش یعنی تازه همون کلمه که انگلیسی هم میدهیم فرش و فارسی هم فرش که هر دو زبان آریاییه فرش و یعنی تازه کننده و وظیفه هر یک از بزرگان هر دینیه که اگر اقلن در زمان حیات خودش سعی کنه دین را از آلودگی پاک کنه زیرا دین مثل آینه روشن در اول که در مروض زمان گرد و خاک و کثافت روش نشسته و اگر پاک نکنیم اون آینه دین دیگه از فروغمندی و روشنایی میافته پس میبینیم زمان فریدون دین میترایی یا میر پرستی آمد بعدن زربانی آمد که بعد میبینیم اینو در دین خودمونم وردیم ضربانه اکرنه ضربانه در و خدا اینم یکی از ایزدان شد حالا زروان یعنی زمان روزگار و میگفتن روزگار نه اول داره نه آخر داره همیشه بوده و هست و حتی بعدا در زمان ساسانیان یک گروه زربانی پیدا شدند و گفتند که زربان هم پیش از اهور پیدا شده برای که زربان رو خیلی قدیم می بعد گفتن زرتوش که آمد دین زرتشتی آورد پس زمان قبل از اهور بوده و اینجور داستانه درست کردند و یک نوع مغلط کاری کردند و این بعدا اسلام که آمد این گروه زروانی ها شدند فرقه جبریون و قدریون و هنوز هم یکی دو شعبه سنی ها به خصوص اشعری ها اینا بهشون میگن قدری ها یعنی به تقدیر و روزگار و شانس و اقبال و اینا عقیده دارن و در ادبیات ما هم میبینیم که پر شده از این عقایت روز روزگار استان که گه عزت دهد گه خار دارد چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد یا اگر به هر سر موید هنر دو باشد هنر به کار نیاید چو بخت بد باشد یا گلیم بخت را که بافتن سیا به آب زمزم و کوسر سفید نتوان کرد و این عقیده زربانی هنوز هم ادامه داره برای چی؟ برای که میدونید همیشه زندگی یک قومی به خوشی و خوبی نمیذاره روزهای پیش میاد که اون قوم در بدبختی و بیچارگی یا غهتی یا تنگی گرفتار میشن اون از اگر بگن اینا رو خدا آورده میگه نه خدا بخشنده و مهربانه بخشاوشگاره هیچ وقت خدا بدی ما نمیخواد این ها رو روزگار میاره برای ما و روزگار غیر از خداه و این میبینیم هنوز در مغزه ما ایرانی ها تا این دوره که اسلام منتشر شد و اونا میگن لا اله الا الله نیست خدای مگر یک الله میبینیم که خدایان بسیاری از جمله پیدا شدن و اینا حتی بین اقبام دیار وجود داره که اونا هم به شان صحب این اینا داره. حالا ذروان را احکرانه یعنی بیکران کران می چون روزگار نه اول داره نه آخر پس ذروان یا ده روزگار عکرانه است. حالا از زروان بیکران گفتند مثل که هر سال به دوازده ما تقسیم میشه هر دوازده هزار سالی یک دوره زربانه درق خداته یعنی زربانه دیرپا دوازده هزار ساله دوازده هزار سال که تمام شد میره در بدن زربانه اکرانه دوباره دوازده هزار سال دیگه شروع میشه و تا ابد اینو ادامه داره و این یک زمانی فکر بشر را به خودش گرفته بود و اکثریت مردمان متمدن و حتی متدین یا مواهد این را بالاتر می دونشتن. پس یشت ها از این و یشتایی که بعد از اشوزرتاش نوشته شد فقط اولوز و هفتن یشت مثلا در گاتا وقتی نگاه کنید اصلن اسمی از امشاسپندان و ایزدان نیامده برای که این امشاسپندان عقایدی بوده قبل از درتوش و در زمانی که هندو ایرانی ها با هم زندگی میکردن در بین هندی ها این امشاسپندان را عدیتیا میگفتند و اینها آمده بودند خدایان خودشون را به سی, و سی قسمت تقسیم کرده بودند بهاب اون اخلاقی که داشتن هر خدایی در رشون سیسه تا ادیدیا بودند که بعدا ما مای زمانی می گفتفتیم سی وسه که بعدا، از رو ترجمه ابستا و گاتا و نوشته هایی که اروپاییان نوشتن و ما اصلا از دین خودمون خبری نداشتیم بعد از اسلام فهمیدیم که دیگه نباید گفتی و سه همشه آسپندان بعدا گفتیم این همشه آسپندان صفات خدا هستند. حالا بعضی جاها مثلا در پنام ستایش میگه اولتر شش همشه یعنی ششتا همشازپندانه ولی جاها میگیم هفت همشازپند چرا؟ برای که این همشازپندان را صفات خدا میدونیم و مثل این که نور خورشید را از خورشید نمیشه جدا کرد صفات همشازپندان را هم از اهورامزده نمیشه جدا کرد و هر وقت اسم اهورامزده را اول نیاریم میگیم هفت همشازپند اگر اول اهورامزدا میاد بعد میدیم شش آس, آس و به قول یکی از شعرات چون نور که از میر جدا هست و جدا نیست عالم همه التاف خدا هست و خدا نیست و بعد آمدیم در رأس آمدیم صفات اهورامزدا را که در اول مزیش مثلا میگه و نام اهمی. یعنی اهورا نام من است مزدا نام اهمی مزدا نام من است وحومنه نام اهمی بهمن نام من است عشبهshtا نام اهمی اردیبهش نام من است کشت روائر نام اهمی شهریور نام من است تا آخر بعد اینا را از اهورا مزدا این صفاتش را جدا کردیم و یک شخصیتی دادیم که مردم عام بفهمند وقتی گفتیم امورداد یعنی بیمرگی یعنی خدا بیمرگه ولی وقت اموردادم شاسپند ازش جدا کردی گفتیم یکی از صفات احورا مزده بیمرگیه یکی خورداد رسائی و کماله یکی سپنتارمز عشق پاک نسبت به همه است شهریبر شهریاری خداست اردی بهش راستی و درستی خداست و عقل کل خداس و مانند اینها اینها در هر قدر دورهی که به جهالت و نادانی می رسیدیم و در علم و دانش بر ما بسته می شد ما می اومدیم و بنابرای عقل خودمون یه چیزهایی درست می کردیم. و میدونید بعد از اسلام اصلا مدرسه ما را به کلی بستند چه ماله پسرها چه دخترها اولین مدرسه ای که برای ایرانیان درست شد بعد از اسلام توسط امریکایی و انگلیسا ها بودن که اینجا میومدن و مدرسه دخترا و مدرسه پسران و حتی بیمارستان ها درست میکردن و منظور اصلشون هم تبلیغ بود به مسیحیت و ما اون موقع برای دخترمون مدرسه نداشتیم برای پسران مدرسه نداشتیم فقط هر کس مخصوص علم یادگیره یا عوستا یادگیره می اومدن در مر و مولد می گفت و اینا پس می گفتند چونانوز کتاب و کاغذ و اینا هم نبود بعد ما به کمک پارشیان هند آمدیم اولین مدرسه پسرانه و دخترانه و اینا درست کردیم. اونام بعد از مانوک جیلمجی حاتریا بود که او آمد و وزر مازردوشی را دید و از ارغتبار ما را به هندوستان اطلاع داد و اون هم در صدد چاره بر رو کمک به ما کرده. به طوری که همکیشان میدانید این جمعه گهنبار پایان تابستان برگذار میشه میشه و ما شیش چهره در سال گهنبار داریم و هر یک از این شهرها به سپاسگذاری از بذل و بخشش و دهش پروردگار اینها را برگزار می کنیم و این شش چهره به یاد آفرینش آسمان و آب و زمین و گیاه و حیوان و انسان گرچه در تورات و در عهد اتیق یهودیان نوشته که خداوند مخلوقات را در شش روز بیافرید ولی نیاکان ما یک فرصت بیشتری به پروردگار دادن و گفتند پروردگار در شش فصل یعنی در عرض یک سال این شیش آفرینش بزرگش را که اول آسمان بعد آب بعد زمین بعد دیا بعد حیوان و بعد انسان آفرید. اینها را ما به نام گاهان بار میخونیم گاهان یعنی اوقات گاه یعنی وقت بار یعنی سفره بذل و بخشش سفره خیرات و مبرات. مثلا میگیم کلونکس بار عام داد یعنی همه را دعوت کرد برای استفاده از سفره خیراتش یا بار خاص داد یا یک گدی به خصوصی را دعوت کرد پس گاهان بار یعنی اوقات بذل و بخشش و گستردن سفره داد و دهش برای عموم مردم و حتی به اندازه حضور در این جور مجالس گهنبار فرضه که حتی بعدا به ما دستور داده شد که اگر شما به علت کسرت کار و پیشه نمیتونید در اون مجلس حاضر بشید یک دانه ریگ بندازید رو پشت بونه همه خونه که گهنبار میخونن و رد بشید یعنی شما اقلا شریک باشید در این کار خیر حالا این شش شهر گهمبار اول میدیو زرم میدیو یعنی میان زرم یعنی بهار یعنی گهمبار میون بهار بعد میدیو شهم میان تابستان پیت شهم پایان تابستان ایاترم یعنی گه همبار پاییست میدی آرم هم میان زمستان و همست پت میدیم هم یعنی زمانی که هم روز و هم شب برابر میشه هم میشه یعنی هم اندازه میشه پس این شیش چهره داریم و در تمام مذاهب خیر و خیرات و داد و دهش و بعض و بخشش از وظیفه عمده مردمانه زیرا خداوند همه را یکسان نیآفریده یکی فهم و شعورش بیش از دیگریه یکی نیروی جسمانیش بیشتره یکی نیروی تفکر و تجسس و تفحصش بیشتره و از این جهت در بین افراد یک ملتی یک عدهای هستند نوابان در منده ضعیف و وامونده پس تمام پیامبران پیروان خودشون را موظف کردند که در این جور مواقعی بذل و بخشش بکنید به بینوایان و درمندگان ما یک نمازی داریم به نام نماز یتاهو میگیم خشترمچا اهورای آ یم درگو بیو ددد واسدارم یعنی خداوند از کسی خوشنود میشود که درموندگان را دستگیری کند پد دستگیری از درموندگان اینهایی که هیچ کاری از نمیاد، برنمیاد وامونده هستند وظیفه هر یک از ماست حالا از این جهت پیامبر ما آشوز ارتوش فرموده پیروی از دین باید با دو نیرو انجام بگیره نیروی عقل و خرد و نیروی عاطفه و احساسات چرا نیروی عاطفه هم باید در راه دین به کار برد برای که همین بجل بخششی که می‌کنیم این عاطفه و احساسات بشری به ما دستور میده که این کار بکنیم مثلا همون برگزاری مراسم پلچه مراسم درگذشتگان، همه اینها کارش با دل نباسر پس باز دستور بگه که در عویستان میگه توحمد آترست شا مننگ هست یه پروردگارا به کمک آترست یعنی آتش ایمان و مننگست شا و منش کاری بکنیم که ما خوشبخت باشیم پس خدا را هم باید با نیروی عقل شناخت و هم با نیروی عاطفه و احساسات ما با عقل خودمون بخشی از خدا را میتونیم درک کنیم ولی به قول یکی از میگه آواز خدا همیشه در گوش دل است گو دل که کند گوش به آواز خدا این است که در تمام کارهای ما باید پیروی از عقل و خرد و عاطفه و احساسات عقل و خرد یعنی وهمند آتفه و احساسات یعنی اشبهشت یعنی نیروی تقبا پرهیزکاری این دو نیرو وقتی همراه است و هر دو تصویب میکنن کاری بکنیم باید کرد ولی اگر فقط عاطفه و احساسات گفت این کار بکن ولی عقل گفت نکن نباید بکنیم اگر عقلم گفت بکن ولی عاطفه گفت نکن اونم نباید کرد وقتی که عقل و عاطفه هر دو اجازه دادن کاری بکنیم اون کار صحیح و درسته این است که تمام پیغمبران ما را به این راه رهبری کرده در گاتا عشوزرتوش می فرماید ای اهو هنگامی که تو را با دیده دل نگریستم در اندیشه خود در یافتم که توی سرانجام و سراغاز همه چیز. پس اینجا خدا را باید با نیروی دل و نیروی اندیشه هر دو با هم شناخت تنها اگر با عقل بخواهیم خدا را بفهمیم نمیتونیم به قول شاعر اون وقت میدیم خدایا بلندی و پشتی توی ندانم چهی هرچه هستی توی این موقعی که فقط با عقل خدا را بشناسیم ولی وقتی با دل و عاطفه شناختیم اون وقت پی به خدایی میبریم که نمیشه با زبون بیان کرد برای که گفته دل به زبان عقل در نمیاد و تمام کارهایی که در زندگی میکنیم مثلا آدم ازدواج میکنه بچه به وجود میاره هزار جور فداکاری برای این بچه میکنه این کار دل، کار عقل نیست اگر به عقل رجوع کنیم میگه چرا ما باید زحمت بکشیم این همه جان کنیم پول پیدا کنیم بدیم به دیگری بخوره و بزرگ بشه عقل اینجون میگه ولی عاطفه میگه نه باید کرد وظیفه شماست همین کارهای دینی که ما انجام میدیم سوم و چهارم و ده و سیروزه و سال و اینا همه کار دله وقتی یک عزیزی در بین خانواده ای در میگذره این ما نمیتونیم یک دفعه ترکش کنیم هنوز دل ما با اوله پس اون از دستمون برمی ما می خواهیم براش انجام بدیم ولو ندانیم او کجاست چطور شده مرده پایتش چیه و به قول خیام اگر بگیم از جمله رفتگان این راه دراز باز آمده کو که به ما گوید راز هیچ کس از اون دنیا خبر نیاورده ولی این کارهایی که ما میکنیم اینا آواز دله ما میخواییم دلمون راضی باشه از اون عزیزی که در این خانواده ما بوده سالها با ما زندگی کرده و ما میخواهیم اون از دستمون بر میآید در خدمتش کوتاهی نکنیم پس پیروی از احکام خدا و احکام پیامبران باید با دو نیرو باشه نیروی عاطفه و احساسات و قلب و دل با اندیشه و خرد و هوش و ذکاوت و دانش اینها باید همراه باشه این است که در این جور مواقعی اگر خواستین با عقل فقط بفهمیم که چرا باید این کارها را انجام بدیم، عقل به جای نخواهد رسید یا حتی ممکنه منکر بشه پس اینجا ما داریم پیروی از آواز دل میکنیم و این از که در اوستا بارها از عاطفه و عقل کمک میگیره و در این سی روز ما اول اسم ارمز داریم یعنی پیروی از اهورامزدا بعد بهمن پیروی از عقل و خرد اردی بهش پیروی از عاطفه و احساسات این س تا چیز باید رهبر ما در زندگی باشد